بسم الله الرحمن الرحیم فصل اللقیطو فصل بعدی در رابطه با لقیط است لقیط بچه ای رو میگن که انداخته شده باشه بچه رو پرد شده باشه افکنده شده باشه و سرپرستی نداشته باشه وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق وزمانك يافت شد بچه عندخط شدئي در راه فأخذه, فأخذه وطربيته وكف وكفالته واجبت على الكفاية مي برداشتنه إن بچه و تربیت کردنش و کفالتش واجب کفایی است. بله این دیگه مثل لقطه نیست. لقطه گم شده های غیر از انسانو میگفتند لقیت نه. لقیت پسر بچه گم شده رو میگند. افتاده انداخته شده رو. البته دیوانه که هم عقل نداره در حکم میشه خب. پس زمانی که بچهای پرت شده یا انداخته شده افکنده شده یافت شد این برداشتنش واجب کفایی است مثل چیزای دیگه که مستحب بود در بحث لقطه اون فرق میکنه چون اینجا بحث انسان هست خب، میگه که برداشتنش و تربیتش و کفالتش واجب کفایی است ولا یقررو إلا فی ید امین و قرار داده نمیشه مگر در دست امین امین شخص آزاده عاقل و عادل میگند اگر غیر از همچونین شخصی اونو یافت مثلا کسی که برده بود یا کافر بود یا بچه بود صحیح نیست از دستش گرفته میشه پس ولای قرر الا فی ید امین و نگه داشته نمیشه، قرار داده نمیشه، مگر در دست امین. قد امین باشه. فان فا این معه مال، اگر همراه این لقید، این بچه پرد شده که کفیلی نداره، کفیلی نداشت مال هم همراه بود یه بچه پیدا شد همراه با مال انفق علیه الحاکم منه خرج میکنه از همین مال بر همین بچه حاکم و این لم یوجد معه مال اما اگر همراه این لقیت این بچه پیدا شده مال نبود فنفقته فی بیت المال نفقه و خرجش از بیت المال در این صورت نفقه و خرجش از بیت المال خب بیت المال نبود های زیاد دیگی هست تو اسلام دیگه خب فصل اما نباید یک انسان تباه بشه فصل بعدی الودیعتو در رابطه با ودیعه هست و اون چیزی رو میگن که شخص به یک, ن... به یک امین می چه چه یک ساعت باشه چه موتور باشه چه ماشین باشه چه گوشی باشه شخص اونو میبره دست انسانی امین میده تا از این نگهداری کنه تا اینو نزد خودش داشته باشد این میگن ودیعه. ودیعه ببینید ودیعه رو ما نمیتونیم دقیق امانت ترجمه کنیم چون امانت عامتر از ودیعه است. ودیعه یک نوع امانت فقط بغیر از ودیعه ما امانتهای دیگه داریم مثلا آریا هم امانت دست طرف ولی آریا رو بهش داده که باش کارشو انجام بده اما ودیعه نه ودیعه رو نمیتون درش تصرف بکنه کارش بگیره ول ودیعت و وديعه ودیعه میگه امانت هست وديعه امانت هست من ساعتی دارم به بده یکی بده که اونو نگه پول دارم یا فلان چیز دارم. اینو میگن ودیعه و و قبولها لمن قام بالامانت فيها مستحب هست قبول کردن ودیعه برای کسی که در مورد آن و دیعه امانتدار است ولا لا الا به و زامن نیست مگر با تعدی کردن سن طرف پولا یکی رو آورده خونش خب اتاق آتیش گرفت این پولا سختن این آقا دیگه اینجا زامن نیست مگر اینکه کوتاهی کرده باشه تعدی کرده باشه بله، پس در ودیعه شخص امین اونی که قبولش کرده ضامن نیست اگر طلاف شد زامن نیست مگر اینکه تعدی کرده باشه افراد و تفریطی داشته باشه دوتاهی کرده باشه مقصر باشه و قول مقبول مقبول فی ردها على المودعی مودع اونو میگن که امانت بش, مودع... بش داده شده مودع ودیعه بش داده شده مودع اونو میگن که ودیعه رو تحویل داده ودیعه دهنده رو میگن و سخن مودع اونی که ودیع رو قبول کرده قبول هست در بازگرداندن بر مودع اگر با هم اختلاف کردند، یکی گفت آقا من ودیع رو بت دادم اون طرف گفت ندادی. اینجا حرف کدوم قبول میکنیم حرف مودع اونی که بش داده شده پس میگه و قول المودع مقبول فی رده ها الالمودع سخن مودع مورد قبول است در بازگرداندن و بر مودع. من ساعتی رو نشد شما به شما می‌سپارم منو میگن مودع شما رو میگن مودع. اینجا اگه شما بگی من آقا ساعت شما رو دادم برش گردوندم اینجا حرف شما مورد قبول میشه. و عليه اين حفظها في حيرزي مثلها و بر مودع هست که این ودیعه رو در جای مخصوص و مناسب خودش نگهداری بکنه مثلا شما فرزن یه چیزی رو به طرف دادید هرچی جای خاص خودشو داره مثلا تلایی بشت دادید بعد این ببره فرزن تو گاف صندوق مثلا میگم جای خاصش اونجا یا پولی بش دادید اما یک کپسولی شما رو داده خب این دیگه در اون انباری که کپسولای خودتو نگه میداری اونجا نگهداری میشه میگه و بر اوس که نگهداری کند این ودیعه رو در جای مناسب خودش در جای خاص خودش و اذا طوله ببه ها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنه، وزمانك تلاب کرد شد شخص مودع بهامين وديئة وانو ندات وتواناية دادن رو هم داشت همراه با تواناية دادن تا انك تلف شد اغا الصاحبش ميگه انو بيار اين نمي بره تا انك دسش تلف شد ضمينة زامنة است اگر صاحبش اونو طلب کرد و اذا طولب بها و زمانی که مودع طلب کرده شد فلم مخرجها مل اما اینو نداد با وجود توانایی داشتن بر آن یعنی عذری نداشت برای اینکه اون چیزو تحویل بده تا اینکه تلف شد اون وديعه بمنا انجازامله قیمتشو بده اگر مثل داشت حالا مثلش در هر صورت زامنه اما اگر نه گفت آقا این چیز منو بیارو عذری داشت هر عذری که بود عذر مقبولی داشت اینجا دیگه زامن نیست اینجا در همچنین حالتی شخص زامن نیست